شیطان رسیم بسید روشن نشد الحمد لله رب العالمين صلی الله وسلم المعصومین در اللهم و عرض شد که مناسبت بحثی رو که محوم شیخ در تنبیهات قطع متعرض کلمات اخباری ها و مقداری از کلمات اخباری هاریشون رویشون رو شد که اصل اون مطلب اصل مطلبش از مربون الله محمد امین استرابادی است البته اخباری های بعدی که مربون شیخ هم عباراتشون نرکردن مطالب دیگری هم گفتند لیکن اصل ریشه این مطلب اون راجب اون مطالب دیگه از کارم یه توضیح مختصه یه ارزمه و اون مطلبی ای که ایشان فرمان دودن راجب قطعی که از بیر ما قدمات پیدا میشه و دیگه نظره این رو ما ریشه ها کردیم از کردیم تاریخ بحثهاش در اسلام از عوائه چی بوده مقدمات قیل شرعیه که در اصطلاحاً تحبیر از او شد و حق پتر حاصل از مقدمات تحبیر از این از همون قبل اول از زمان دومی این مطلب شروع شد و موارد رو توضیح دادیم در دیروز در توضیحی که عرض شد به منصور رو دنس کردیم که چه حواملی محشه این بحث شد یکی شو تفکی که به این فقه بلایی و, و عدم فقی کنی فقه بلایی و فقه استنبالی این راجع به این قسمت بحث بود و روشن شده اجمالا که انصافاً برای این وجوهی که بفته شده به هر کدوم در محل خودش خواهدانم مسئله استصاف در محل خودش الله خیالا مسئله یاس در بین اصحاب ما مسلمه که نداره مسئله صد زراین ها هم در فقه ما جایی نداره چون دقیق نیست مگر روی فقه بلایی یعنی در فقه بلایی اگر ولی تشریف داد که این مطلب ممکنه منجربه شد به یک فساد بخواست دروش رو بگیره از سلام اون حرف بگیره نیست فقه بلایی زوابط خودش رو داره استحسان برش نیست نمیشه فقه رو با استحسان ثابت کرد مگر باز در فقه بلای که داره مسئله شورا که اینها محضر شده این لاجه به این قسمت بحث بود از که پس تا این مقدار مقداری که مرموم الان محمد امین استرابادی در کتاب خودش و از ها اقل و عبوده این مقدار رو نمیشه باش اثبات حکم شدید کرد در بحث فقه ولایی چرا اینا بردش کار بود دارن و زبانت خاص خودشی میخواد اصفاقی سمباتی هم خارج. پس این راجعه اجمالا راجعه به عقل شد حالا برای جمع گفتیم چون در اصول متأخر شیعه بحثی به نام قاعده ملازمه آمده که ظاهرا در اصول عقل سنت هم هست اما من حالا مقدار مراجع از اصول شیعه و عزم. بحث قاعده ملازمه آمده ما ارز این در ضمن بحث عقل قاضی ملازم هم متخصر میشیم قاعده ملازمه کل ما به الهر و حکم به شهر اقتش کل ما به شهر حکم به رفت من توضیحا از کدم قاعده ملازمه در کتب اصولی حوزه ایمان مثل قوانی و حصول اینها مطارق بوده بحث می شده چون به وضعی که مدرم شد چند حفظ بحثش چود می کشیده اینطور که در نوشته ها در می آن اما بعدها یواش تواش این بحث است حصول ما خارج شد محصوصا مثلا در اصول ما بیشتر دفتی رکتا به رسال و بعد در فصلی کفایی و حرف محروم نایمی و آزیا و دیگران و آقایقوی این قاعده مدازمه من بخش خارج شد احتفال شد به یک مقدار اجمالی که در همین جا هم آقایقوی بر اون نایمی هم داره. اون مقدار اجمالیش این شد خلاصش در اصول تبیده بود در این اخیر. قاضی مرادزمه رو تو مرحله علل اساس احکام قبول نمی‌کنه تو مرحله معالیم قبول میکنیم یا اصطلاح الهل بر معالیم یا مرحله جعل و مرحله استصحاب ما حکم به عقل حکم به شرع تو مرحله جعل قبول که بگیم مثلا اگر بگه این کار حسنه پس این شرعاً واجبه اما تو مرحله انتساب قبول میکنیم. این خلاصه نظریه است که مرجوم ناینی دارند مثلا آقایان دارن بیان که این توضیحی که من عرض می کنم بیان نکردن مرادشون اینه پس تو مرتبه جن ملازمه رو قبول نمی کنیم، اما تو امتصال مثلا در مقام امتصال عقل و حوفت می کنه اگه چیزی واجب شد مقدمه شوری رو قبول میکنه تو مقام امتصال اون که برگردید مقام امتصال قبول میکنه اما اون که برگردن مقام جهر قبول نمیکنی یا اصطلاح دیگه در رسوی علت ما در ذرقای بجنوزیشون اینطور تعلیم کردن من اونهای نمون توی عباده نایی نمون اعاظم من تغییر مقاما استالای بجنوزی کرد. از آدم علمان بودن قدس الله نمسته مضافم بینید که ارکبات نزدیک هم بران اونهایی داشته اما توی این تغییر نایی این تغییر در این از ما در مرتبه علل قبول نمی کنیم قاعده ملازمه تو مرتبه malaی قبول می کنیم استاد هم همه اما به انتصال بڑن به جوی مهادی ما در رتوی امتصال قاعده ملازمه را قبول می اما در رتوی جعل قبول نمی کنیم و در مرتبه امتصال اگر قبول کردیم دیگه یکی و حکم شرگی نمی کنیم شروع مرحل متأخر متاخره جله رتواش نگاره چون مال بعد از انتصاب بعد از جهله اگر در مرحله انتصار علم چیزی گفت ازش ایش استفسار حکم شرقی نمیشه کرد به درد حکم شرعی نمیخوره به لحاظ رتبه رو ای که داره نمیشه استفسار حکم شرعی بکنه ثابت هست یعنی اگر گفتیم مقدمه واجبه این میشه مقام انتساب مثلا در ذهنیت اینها مقام انتساب 100 درصد در اختیار عده چون در اختیار عده رفتی به مقام جمع نداره این خلاصه ای اون چیزی که الان در بوضه های ما از قاعده ملازمه سابق مونده البته از کلم خیلی موجد از ما در بحث های سابق شولانی بوده و خلال بحث هایی که تا حالا داشتیم معلوم شد که ادهی از مسائل شرعی یا فقهی یا اصولی ما طبق بحث های رائج علمی بوضه ها عرض می شده از وقتی که در موارد کلامی یا موارد تلسفی بحث حسن قبط عقلی مطرح شد این حسن قبط عقلی به اعتبارات هم رسید یعنی اون حسن قبط عقلی منجرب این شد که او در فیل خورده از سرین از سه قرم قبل در اروپا تقریبا مسئله قانون و اعتبارات قانونی که مطرح شد مثلا جامعه به اداره جامعه سعی شد در یک تفکر در قانون رو به این نوع قرار داده اجتماعی تفصیل بکنند الان و البته در کتاب روح قوانین منتصفیو خلاصه حرفش اینه یه آدم وقتی کتاب میخونه و همینم منجر شد به اون تحولی که در اروپا بود اون خلاصه حرفشی ابتدای این بود که دین یک مشک دستورات اخلاقی با این دستورات اخلاقی نمیشه جامعه ر اداره بکنی ان خلاصه بحث اگر کس صورت پ دورت راس جلو با این نمیشه جامعه اداره کرد نمیشه اقتصاد با این درست کرد نمیشه مبانی فرهن فرنگی اجتماعی سیاسی نظامی اینجور چیزها رو نمیشه با دستورات اخلاقی انجام داد قانون رو نمیشه با دستورات اخل این مطلب یه همچون رشد رو... پیدا کرد از خواهی نخواهی میردم از کسانی که مثلا مسلمون بودن شیعه بودن سنگی بودن هر رو خوندن متأثر شدن به تفکر ها من دیدم که این فارسی هم دیدن. که اینا برمیگرد همه چیز رو با عنوان مثلا به این که این یک نوع قرارداد اجتماعیه یک نوع فهم وقلائی یک نوع مسئله بشرید رقصی به آدم دین من از کردم تقریبا خلاصه ای که از این جمع بکنیم، این ادعای شما حالا با بقوله مقدس شروع حکومت رو عقل از مقوله دین خارج شده گفتم حکومت یک مقوله دینی نیست حتی ملتزم شده که اصلا هم یا الهی اصلا برای حکومت نره حکومت مقوله شیما اداره سیاسی مقوله شماست دین اصلا به این بهش کار نداره دین اصلا کار نداره وجود نظام سیاسی پادشاهی باشه جمهوری باشه شورایی باشه چه نظری باشه اصلا دین مقوله ها کاری نداره این از معبودی دین خالش دین اون کاری که میکنه جنبه های تربیتی جنبه های اخلاقی است حاکم عالم حال شاه باشه جمهور بشه بشین به تو باید اداره تست بشی تو از ظلم نکنی تو از دروغ نگی، تو باد خیالت نکنی دست چشم پاس همه عذاب و با فکر سالم باشه به مال مردم نظر نکنی اموال مردمو هرس نکنی حافظ مردم باشی به قول خود مونتسکیو اول کتابش تقوای سیاسی رو شروع می‌کنه. علاوه بر دینی، تقوای سیاسی و داشور. این خلاصیه یک اثر نویسنده‌ایه که من دیدم. یه اسمی رو میخوام ببرم خدانه. یهدی اضافی بعد حکومت بعد یواشا نه این چیزا هم برادر اسمش چیه؟ حدود و تعذیرات و اینا رو هم از جنبه دینی برداریم می‌گیم اینا هم اجتماعی هستند چه اشاذه در زبان زنداله در زبان افصل نظر در زبان تبیید می دارم ارجاع بدید به فهم اقلالی و در شاره کار شاره این باشه که هر مجازاتی رو که قرار میدید ظلم نشه اجهاب نشه عدویت نشه مراعات جوانت بشه موجه به تعدیب ترد دقیق کردید می کار دین می تعین کیفر نید. این کیفر رو بشر تعین می در خیلی زمانهای های مختلف انواع کیفر قرار میده، این اصلا مقوله کار دینی این انسان ها هستن عقل انسانی که میاد انوار کیفرها رو قبول میکنه با مناسب باشرات اجتماعی چون خود زندان در این بخصه سابرم متعرض شدیم یه بخص قانونی داره که اساسا فلسفه زندان چیه فلسفه کیفر چیه آیا به مجرد که در مقابل عمل او یه او قومت در جزار میشه یا یک نو به حساب پیش دستی مثلا این شخص مال مردم از زندانش بگیرند یعنی این فرار کرده. آیا زندان اینه؟ انواع اقسام تصورات این که کنوانسیون های زندانیان هر ها چه جنبه به اصطلاح خودشون توصیکن برات، به آنون سازمان میل، در همونجا برو چلوشگاه ماده قانونی داره که به زندان زندانی بذره ولی داد مرگ تگردان مرسته بود. یه مقدار از اون صحبت میشینه که فلسفه زندان چیه و چه اساس زندان چه. سه شیء، زندان. این در حقیقت چه نقصه ای داره چون اگر اصلا نقصه تربیتی بود کسی محتاط بود زندان شده باید بودم تربیت تربیهت زندان بشه یعنی اون نقصه یعنی صفحه زندان رو در نظر گره تبرای اون نقصه کار رو هم دفت کرده اون میگه کار دین نیست که بگه اینه شیش ما زندان بکنید یعنی حکم دین نیست کار دین میگه که کار سریع اغلایی رو با هر زمان درست مت ممکن در یک رامان شیش ما زندان باشه در یک رامان دیگه بعد اکرامه و از جهانی جوره میتونه شیش ما طبیعی بشه شیش ما زندان یا حبس خانگی بشه بجای زندان مخصوصا چه از چنده باشی؟ یه نظری هست اصولا این بین اسلامین هست که در صدر خود اسلام ما زندان نداشیم احلی سن اولین زندان رو علی نوی طالب درست کرد اون علی علیه نوی اما من در کلاه خودشون در فصل بارید دیم که نه عمر گروز کرد حالا من بایدون بخشیم بخشیم مطرقه در میگن ما در اول در زمان اصلاح حفظ داشتیم نه زندان نه سیشن عنوان سیشنیه عنوان ایست که بعدها پیدا شده با این زمینه این تفکر این طور میشه خب دقیق من نمونه هایی رو براتون کردم که مطرح شده را کرده خب یه تفکر نه. حکومت اقلاعی افکام جزایی اقلاعی مسئله معاملات هم اقلاعی این هم کارعزین کار نیست این کارعزین نیست frameworkه این بیگرس درست این اجاره درست است کارعزین نیست کارعزین همون جاه 3 و اخلاقی و اما اینکه این معاملات چی؟ در جامعه فهم بخونه معاملات انترنتی پیدا بودی کن معاملات انوار اکبارات ما فقط کاری که دین میکنه این قسمتی که به اصطلاف بگه شما مراهات اخلاق مراهات ظلم مراهات ادالت، مراهات انتا ملتظم بشین به ملتظم بشین به التظامی که دادین عقلی که بستین قراردادی که بستین اون رو انجام بدین تخلق دقت کردین شما خواهد به میکنن. این زمان ما الان آن چیه بعدی روشنگریهای دینی به قول خودش گفت روشن روشنگری دینی اون اون قضیه که ما همیشه در تحلیل بگیریم فرعون هم اونعرفو کرده آره نه نه عبد داره بکنه علگه فاش دست خودو اونجا اینکه عبد این است اگر روشنگری دینی است و دیدنیه این اکثر مخالفتا به هر حال این من می‌خوام یک خیری از این مساله در ذهنتون روشن بشه این نحوهی ما برخوردهایی بوده که شده در این اسنا چون بحث حسن قبعه عقلی محرف شد این حسن و قبعه عقلی هم به اصول وقت در مباحث عقل تجلیش شد قاعده ملازمه قاعده ملازمه و مباحث خود حسن و قبعه خوب خودش این بحث خاصی داره که حقیقت چیه مراد خود اونها چیه اونیدی که الان در گستن قبط علی به هستم زادر در کتب کلامی کتب کلامی معروف در یکی مثل مواقع و اینا متفرقات نه اینا در گستن قبط حقیق دارن سه چیزه شرکی که دارن من که بگم چطور اون بر منتعی شده این قاضی مراز یکی این که گفتن ما ادراک ملایم و منافر رو میکنیم یا ملایم طبعه یا منافر طبعه بسن تزده میخورم می این درنه چی گنگذرس رو میگه این منافر کنه چینه میخورم خوش رو میاد این ملایم کنه گفتن حسنغوب در عقلی به این معنا قطعیه یعنی ما این رو ادراک میکنیم این ادراک میکنیم این ملایم کنه هن ادراک میکنیم منافر کنه این به این معنا رو قبول کرد حسنغوب نور به معنای کمال و نحر گفتن اینم قطعیه مثلا این ساختمان الان کامله هر کی که احتیاطی توش خرار داره شده تحبیه میخواسته یک پرسیل مثلا اینکه یک پنس سرمایه، جرمایه تمام این خصوصه این هم میگه قفیه این هم جایی برتمانیست خب در برتمان که اون خصوصه رو به رو که پس یکی ادراک ملایم و منافره میگم قفیه عرض ادراک می یکی ادراک کمال و عدم کماله میگه این هم عقل ادراک میکنه این هم به شرع نزده میخواد سر رشید چرا به شر آمن یه معنای دیگه حس اینه که آیا عقل حکم به زم و هم میکنه یا نه یا فقط عقل کارشی ادراکه یعنی عقل فقط دیگه این کار کامله این کتاب کنان چاپ کردن خیلی کتاب کاملی هیچ دست نداره این دست و کامله اون چی که احتیاج داشته توش یا این رو عقل فکر میکنه یا عقل میاد توی افعال اضافی بر او یعنی دستشون این شد بگه چرا این کار کردی این کار بد بود و زمتشو کنه آمدن حسن و قبل به این مرمه گرسه هم. اون کسی که میبود یعنی اشاعر که میبودن حسن و نداری عقل کارش این نیست که زم و قرد بکنه مرد بکنه ف این کار عقل است این حسن حسوقیری که اونا در اون زمان گفتن همون عباراتی گفتن ولی وجدان اخلاقی که الان ما میگیم یا در زبان عربی و معاصر اونا اگه بدونن به وجدان اخلاقی زمیر میگن، امیره انسانی معنی اینکه از این از اعظم این صد دو سه تا من یک کتابی نوشتن در این معاصر ایران نگردن مثلا میگو ما دقیقا بر منکر وجدان منکر زمیر بود یعنی به زبانی در عربی معاصر یعنی وجدان اخلاقی این وجدان اخلاقی هم در مقابل وجدان توبیدی الان اصطلاحی رو که گذاشتن یکی وجدان توبیدی که یکی از ادله محکم توبید وجدان یکی هم وجدان اخلاقی این وجدان اخلاقی همون حسنقه و اخلیه این مطلب که انسان در ذات او یک نیرویه هست که او رو مرد یا میکنه می نمیگه این کار بنا ها همین مثل ممنون آیاشان سنویش این ادراکه وازن این ادراکی حکمی حالا این من بگید ای واضحی بحث الان میخوام بشن چون الان رفتی به بحث ما می پس قصد ریشی حسنگو روشن شد یوزم و فائلو او یهده و فائلو این زم و من آمد مخوام بیان چرا آمد به خیر؟ بختم اون زن و مردی که در عقل هست وقتی در فقر میاد میشه اقاب و ثباب رابطه اوزنه شد دیگه اون مرد میشه ثباب اون زن میشه اقاب پس آمدن معتذل عقلیگره ها معتقد شدن به حسنقوف عقلی پس حسنقوف عقلی که ای میشه میشنونید در حقیقت کمال در اصطلاح اونها کمال نیست در اصطلاح اونها ما یوزم این چینی چیزی در وجدان انسان هست ما اسم شهران در زمان خودمون در زمان فارسی گذاشتیم وجدان اخلاقی این وجدان اخلاقی هم رو سمون فهم چون توش داشت یوزم و این منشأ شد آمد چه اصول به جای یوزم یا و فائلو چون داشت یونده و فائلو این آمد تو اصول شد مثلا یوتا و فائلو صرف این، مثلا من همه از برای مداره اجمالت صرف انتقال این سقر ناخی چه صور یک در درشم اسلامی مثاله بارونه کردن حکومت رو حدیدن جذاب و کیفه همه رو به هم ریخدم این مطلب هم رییشه‌ی نبود، این در حقیقت این بود. یه بحث کلامی بود، ریشه کلامی داشت. من قرار عرض کردم اصول اسلامی به شروع مدت ها متأسفانه به کلام بود. مدت‌ها یعنی چندین قرن. چه در پیش ما مثل منون سر مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید که پیش اهل سنت که اصلا از, از برای اهل سنت کتاب‌های موسوعی هست که داخل در کلامه. ریشه بحث و ریشه های کلامی داشته. پس این بحث آمد ریشه کلامی پیدا کرد اسمش بودن حسن عقلی این حسق قلبه عقلی به این معنا نه اینکه که ما ادراک میکنیم شدی زیباست این که جدیه بحث نداره ادراک میکنیم این کامله این ناخته اینا هم جدیه نداره اون کسی که منکر حسن قلب بود مراد که این نه بود ولذا اونا ادراف رو مشکل نمیدونستن مشکلشون زم فائل و مرحف فائل بود یعنی می گفتن کار عقل این نیست خودت فکر بکنی مثلا کار عقل این ذم و مد نیست از, از اون اشاعره که منکر بودن همین که این بود این منکر قبلی می گفتن کار عقل این نیست که بگه این کار مثلا چون مبلعه تو این کار خوبه این کار بد تو این کار زشت انجام دادی مزمتش بکنه سرزنشش بکنه که ما الان گیرده جان اخلاقی این همون حسن و غفه اون وقت چون حسن و اخلاقی رو حسن و غفه رو قبول کردن اخصا مقتدله اصلا اشون نموزه در حصول که ببن حسن عشقری با تنظل از اصلش باز قائل به قائله ملازم شده یا نشده نمیدونم که نشده کتاب عشق نگاه رو کنم نشده برای سیاه کنم تو اقوال عهل استخنهت اینجوری که ای که من نگاه مرادش خودشان به اقوال احضر سنت نسبت نمید پس لقدر فرموید این شد یکی از معانی عقل که من از کنم تو بحث چیز متعرض بحث قایده ملازمه این قاعده ملازمه فر حسنقوبه عقلی شد قایده ملازمه از کنم اصحاب ما قاعده ملازمه تو مقام ملاک واصل می چون عقل این ملاقات با ملاک ادراک بکنه میگه تقریبا محربونه ان شد که قایدی ملازمه ثابت نیست این دیگه تقریبا محربونه ان شد که مقام انتساحت مقام معالی قبولش کردن اما چون مقام محری کشو باز باشه اینکه این که اختصار شد در کلمات متأخری چون تو اون مرحله حالا غیر اینکه خود اینها خودی بسنگو به حقیبی معنی مصطلح قبول نداره. ادراک میزید. یه نوع ادراک میزید. خیلی از این کالا در خود مبنی اشکال پیدا شد که یا زم و مدهه یا ادراک مجرد ادراکه. یعنی در حقیقت اون بحث اساسی این بود که بشر دائما ادراک نمی کنه. حتی اگر ادراک نظام اتم رو کرد مثلا نظام اتم با قلوب اون آه حتی اگر ادراک نظام اتم کرد این بحث این بود که اضافه بر ادراک یک نیروی دیگه در انسان هست او رو می کشه به کار تمام فقط ادراک کمالی ببینید؟ به حیثی که اگر از اون ویسا نکشی که انما احساس نفس می‌کنه. کنه وجدان اصلاقیش رو سرزنش میکنه. چرا من این کار انجام دادم؟ پس در حقیقت بحث بر این نیست که آیا انسان ادراک کمال یا ادراک نظام حتم می که پروردگار رو متحال در وجود و میکنه؟ می کنه؟ نه این نیست اضافه بر این ادراک یک نیروی کشش دیگری هم در او هست که اون نیرو رو بازار میکنه. این از مغوله ادراک هم نیست من معاای انسانی ادراکی هم برگریانی و فعل نه، یه ادراکی هم برگریانی و فعل نه. خود افعال نه، یه ادراکی هم برگریانی و فعل. اون در در انسانی دو چیزه. یکی ادراکشه، ادراکی هم برگریانی و فعل. این بازم عرنه نظریه. یکی که انجام بده، می‌کشه. کدوم جنبه نظری معمولا آیا شوند؟ تفصیل کرد ادراک ما یا بقیان یفرند یا بقیان یفرند ادراک ما یومده فائلو. نه ادراک نیست قیلت جمعه ادراک یک نوع امر داخلیست که آیه مبالکه هم احتمالا ناظر به همین باشه چیه نهارزان امانات عدس همه و اشرای من ها و از کان ولومن جهولا. این ظلومش ناشه به همین حکم عقل عملی باشه. ظلم در اینجا مجرد ادراک نیست. ظلم یعنی یک کاری انجام داده، جلو ظلم واقع گرفته بشه. جهول عقل نظریه. ظلومان جهولا این اشاره به دو تا حقیقت انسانیه. یکی ظلوم بودن انسان که این عقل عملیه. یکی جهول بودن انسان که این عقل نظریه. انهو کان ظلومن یعنی در ظاهرهای مبارکه نسبت زن داده شده زن نرشی یعنی بهش گفته این کار بکن نکرده ولی ظاهرهای مبارکه که دو حقیقت در انسان وجود داره نه یک حقیقت که ادراک باشه حتی ادراکی هم بقیه همی بفرد این نیست، وادا میکنه انسان رو میکشه انسان رو و این البته این نقطه هست اون بحثی که من کردن این عقل عملی را مثلا به هسته آلا نسبت دادن تا ما کان را که به والله من دل عبید لیکن انصاف به دیشون من من جنون اما مستاد در مورد صفات الهی لبون حضرت حق عقل عملی معنا نداره مثلا جای عقل عملی نیست اونجا کلن ادراکه مثلا مرحله عقل عملی و ما سوزیش هستیم در بحث ساداشونی توی این بحثم بنامود بحث صحبت بکنیم از سر عملی در حقیقت یک نوع تجلی بحث آزادی اراده یعنی آزادی و اراده انسان. اشیاء این که این آزادی اراده ندارن موجوداتی که این آزادی اصلا اقل عملی در اون مطرح نیست در حیوان مطرح نیست گرگ زلوم نیست اگر دوستان به اون خوره نیست اون میشه عرب ندره از اختزای طبیعتش این اختزای اغرب اگر میشه میزنه ظلوم نید جای خودش ظلوم هم نید پس این یک خصوصیتی در انسان چیزهایی که کلن اراده ندارن مثل سنگوینات از ها خارج هست مثل نواد که اراده محدود داره خارجه مثل حیوان که حساس است و ارادهش بیشتره اون همچون یک طبیعت خاص داره اون نسبت به عرواه به آلم مجرده حالا قاعد بشین به مجرده یا قاعد نشین تا حق سالا در اونها هم عقد عملی مفرح نگید نه فقط در حق سالا همونطور که همی المومنی فهم که در ملائکی منها من ها قیام الله قبوده منها قبود و, من و ملائکه داره یک صفت واحدی هستن اصلا در اونها ظلوم هستن <تصفيق> نه در اونها چهبون مفرحه نه زلو مفر این اِنَّهُوْكَانَ ظَلُومَنْ جَهُولَا این اشاره به دو خصلت انسانی است یکی عقل عملی است که نتیجه ایتنون میشه یکیش عقل نظری است که نتیجهش جهول میشه این قطعید اون کسانی که معتدل قائل به عقل عملی شدن و انصافن هم هم با اوناس انصافن ما نباهاشم سن در این جنر محافظه نباهاش حضرت اصطاق قدسالله همینطور که خود اونها گفتن اصلا سر کمال انسان سر مبعض انبیا بر همین جهازه. ما اگر عقل عملی نمیزیم کنار اصلا سر رو انسان به انبیا لغوه تمام تشکیلات الالی لغو میشه بقید روزاره انسان بقید پس خود تصور بکنیم تصور روشن شد اجماله اجمال تصور این است که ما غیر از کمال یک وقت تصور ما از عقل عملی این میشه غیر از اجراث کماد یک نیروی بیگری در انسان هست یک اصطلاحی بود که خدمات ما عرضه کنه یک اختلاقی نیروهایی که در یک شی وجود داره و این ذاتی نیست جزء گاهی از این تغییر به عقل می کنن. گاهی تعبیر به ذاتی میکنن گاهی تغییر به طرح می کنن گاهی در این حالا وارد این بحث الان نمیخواب باشم فاید اشاره از این میکنم چون اینا ببین مثلا ببینید در فلسون ما در احضاع بدن فلسون خود قلب یه حرکت داره این حرکت داده نشده به این حضاره این ازش حرکت, حرکت طبیلی تصویل میکنن این ازش تعدیل میکنن مثلا به هر امامگی نروز یه نوع حرکت فیزیکی مثلا زاکی مثلا همچنان که در قلب خدا داده در انسان هم این رو طبیعی از جایی گرفته نشد این از جایی گرفته نشده مثل اینکه بعد از تلاسه به غربی نه تا رو با عنوان اساسی در تصورها که میگن بشر از جایی نگرفت یکی زمان میگن تصور زمان رو بچه یاد نگرفت خدا در نهاد انسان قرار داده فرسون در نهاد حیوان گربه گوزفن زمان وجود نداره اگر رفتیم گوستان گرسون رو میکنه گوستان نیمیتونه که من دیروز گرسون بودم مال دیروز رابطه زمان رو نمیتونه بگه اون اون شکست میتونه بگه اواز زمان رو اصلا زمان پیش اومد این فیلسفه قربی تصورش اینه که این زمان که ما قدرت داریم تبدیرون زمان ماضی آیده این از کجا آمده این یاد گرفتی چرا آیا مانشت بوستن خود این زمان یاد بگرفتیم تر این میگه نه زمان یاد گرفتیمی این در ذات انسانه این چیزهایی ای که در ذات انسانه اصطلاح بشیم اینکر اقلی میگه یکی از معانی اقلی اینه که در ذات او وجود داره اون بخص بدون این که از خارج گرفته شده باشه یکی شما این زمانه در حس و قبط عقلی هم همینه یعنی این یک خاصلت واقعی در انسان، ذات انسانه جدا نیست. عوامل خارجی توش آمده اون فقط ادراک کمال نیست، فقط ادراک یمبغي ان یفعل نیست. او رو میکشه. اون رو به این کار میکشه. وادار میکنه. اون وادار کردن این اصلا تجریه قرآنی شده کان ضرورا که اسمش عقل عملی بده یکی هم عقل نظریش قابل جا بوده. یکی این طرفه که اون طرفه. اصل این تصور ده این اینdialogه که به فکر آمد و به اصول آمد به جای ما یم ده فاعلو شد یا عاقب فاعلو. اطلب که یصاب فاعل به جای یغم مفاعلو شد یا عاقب فاعلو و آمدن حسن و حفظ عقلی رو منجر کردن به ثباب و عقاب شرحی چون منجر بودی شد؟ چطور مثلا عقل انسان حفظ میکنه در زندان خود رو گرم بکن در مرض مثلا دارو استعمال بکن ساختمان مناسب شعن خود بسار در هر جایی در آهر آب و هوایی زدگی مناسب با این عقل عملی میتونه میگه اینها که میاد دنبال این حکم شرقی هم میاد غایتو مافل با چون حکم عقل عملی میتونه مثل حکم شرقی درجات داشته باشه گاهی الزام آغره مثلا میگه این چیزی که منجر به حلافتو میشه نخور این الزام آغره اگر عقل گفت نخور چون منشه از بین رفتن حیات توست شاره میگه نکن اقاق دارین تو جهنم میگه مثلا اما اگر اون درجه نبود کمال بود این خونه رو اینجور بسازی راحت تنید شاره میگه مستحبه اون استحباب شرگی رو ما از این استحباب عملی درده این خلاصه طرح بود اگر آیان یا کتاب دارن چون من یه مستحبه بخیم ها بگه این همشه دیگیم که چی گفته خیلی طولانی میشه و خیلی هم سرفوائد اون طوری نداره الان اصلا من الان از کتاب روز کتاب فسول مخواستم بخیم دارم نرسیم یعنی فردا انشاءالات حالا به مقدار که با بحث آشنا بشین چون در کتاب فسول در این چاپی که من دارم این چاپ در بوداغون قدیمی ها نمیتونم حالا به چاپ دیگه چی جدید چاپ جدید شد یا نشد یه صحبتی بود چاپ جدید شد ایشون از صفحه این چاپی که من دارم از ففیه سی, و سی و وارد بحث حکم عقل بحثی که مطالع انجام داریم از ایشون فصلان ینقسم الحکم به اعتبار الحاکم الى شرعی و عقلی یک فصل اولش حکم شرعی و عقلی درست کرده فصل بعدیش اختلط و قائلون بالحسن و قبح العقلی خیلی ملازمت بین حکم عقل و شر حالا من از اینجا نعمل میکنم نمیدونم خود من شون مراجعه نکردم اون وقت نکردم مراجعه فرده هم بله اکثرون الی اثباته ها مطلقم نسبت این اثبت داده که قائل به ملازمه و سار آخرون الی نفی ها مطلقم و خط دردان تباسی بیانه هست اینشالله فردا نه به اشاره اجمالی متعرضه یعنی همینه کلامشون نمی کنیم یه مقداری که محلق روشن بشه کلامشون نمی کنیم و بعد این شبه بازه بحث دیگری نمیشی این بحثم به اینجا ختمشون و صلی اللہ علی محمد و آله طاحت طبعا المیورشون آخر یعنی العقل یجبر الشخص یعمروه یعمروه ای یحمله على اطیان الحسن و الکمان لا فیه قوه فی باطنه موجود ها ده القوه مو مکتسب من الخارج ای ها ده القوه الموجود فی غیر مکتسب من الخارج حاضر القبه تدعو الى الكمال. مو فقط ادراک کمال، آم لیست... لی... لا امر جواد على امر ما نقطتون نقطه واقعی دقیق مطابق معقل واقع تماما حالا چه نه... داره که در ما و عامی ان بود چیزی دارد و فقایات هست در کل خیلی کل رو بل ارگراد هست ولی عمل رو اون شه نسبت داده بقای دیگه پرنسیم در ایسان هست مثل غریبه بهتر یعنی اون عمل از اون احساس و از اون غریبه بهتر تلدی از عشقی که از درس عرمشت گرفته میشه انسان به عمل هسته. و همه یعنی اختلاف هم میشه که آیا ما یک درک عقل داریم و اضافه بر درک عقل این مسئلهی که شما فرمودین یا نه ما درک عقل داریم اما اون درک اضافهی بر او یک واداشتر هم داریم امرونه واداشتر یعنی یک نیروی دیگه در انسان او را وادار میکنه فقط مجاز اینکه این کمال نیست او را میکشه. حالا اون تو مسلما در قلب نیست چی؟ چنین که میکشه هر نفری که شده هر دخترم بیسوی او، امر نیه او مشک نیه بوی و از بوی او. اونش کدی دوباره؟ مالLOY؟ یکی که تو دست نخوند نه یه این یه یک واقعیتی. حالا اون که میکشه بوی دوباره او، او همون نفیع الهیه او همون عقله. یک قویدی هم خدا اونم معلوم شد در سنگ نیست در حیوان نیست در انسان هست در مراهکی نیست در حق تعالی هم نیست اصلا در اونها معنا نداره در جایی که دو تا چیز هست کمال و نقص هست یه نیرویی که انسان رو به نقش به کمال می که اگر به کمال نرس رو در حق خودش ظلم می دونه چنان واهسیان کرده کان ظلومن جهود آقا بله. نه اونجا اون هم تکلیمیه اختیار ندارم میدونم اما اختیار ندارم اختیارشون یعنی این طور خداون امر تکلیمی درشون قرار بیده که اینا قیام من منو قیام الله خوده دارم منو قیام الله اینا ترفت کل از اون چی خودمونه؟ این ملاکی بارانه باران میاد که ملاکی آتشیه پزون آسیب جابجایی ویکره آتشیه باران نمیاد باران یا آتشیه نه این یعنی نه این نه این نه این نه این نه این نه معلوم نه نه این نه این نه این این نه این نه این البته که کمال چیه اختلاف میشه یکی از صرف اختلاف هم اینه. یک تریاکی خیال میگه کمال نیه که میشه بشه تمام زحمت خودشون که تریاد تحصیل نکنه بشه کمال رو تو این بیدیم ما حرفمون اینه خلاصی حرفمون اینه این ادراک خب این مطلب, مطلب تازه هم میشه خب آیا خویان قالب ادراک آیا خویان میگون منه ادراک عقل امنه من ادراک من رو ما آشانسه هم ادراک اما آه خوی ادراکی مثلا کمال یا حس میدونه آه خوی من رو آشانسه ادراکی هم بقیه انی و فعل میدونه ما میگهیم ادراکی هم بقیه انی و فعل هم نیست خود افعل اونی که اونو میخواستم بگم یعنی این در ذات اینسان یه چیزی دیگری هست من درک کمال میتونم من درکیه میتونم که این خونه بر من خوبه یه چیز دیگه هم داره میگه به حیثی که اگر انجام نه تو فرصت سوزی کردی تو از به کار بد کردی چرا این به کار نباردی این مدوزمم اینه زلومم اینه ادراک که باشه ادراک دیگه توش اتاب نفس نداره مواظب لازم شه جلو گرفت اون در من حسس نداند من خاموشم و در فضا دارم که فقط اون یعنی و این مطلب که این هم غیر از آیات و روایت بود تا به بی‌جان خود انصافا این احساسمو میکنه یعنی انصافا این که مر مرونو مرو مولایی مرمون... گفته چیز که می‌کشد مرا هر نفس می‌کشد مرا این که ادراک می‌کنه چیزی که نتیجه را هر نفس هم به سوی عبودیت انبر نلیو می نه، بوی یک پدیده این یک نفخه الهی در اصل وجود انسان که این رو به کمال می کشه، به حق الهام می کشه، به نظام عظم می کشه. این که ادراک نظام عظم میکنه. خیلی از همون تو که نفس ابراز میکنه نفس شما فهم میداره نفس هم خودش رو اجبار میداره نفس، این به جای نفس گاهی الاسه خوب شده گاهی چون نفس ناخده ناکم میدونه گاهی از این تأبیر به عقل میکنه به یعنی کمال اول نیست استداشتون نفس کمال اول این چون در وجوده و در تکلینه در سیر تمالی تکلین خبا مطرحش کرده از این تأبیر به عقل نیست یک یعنی این انسان این جور وجود پیدا کرده اول مطلقه هر دوره میگه اول مطلقه اول مطلقه اول مطلقه اول مطلقه نفسی, نفسی. نفسی. دقیقه چون نفس اولین کمال جسم حساب میشه اون بالاتر از کمال جسم این دقیقه بکن مثل بحث سر اینه اونی که من میفهمم از حسنق و عقلی اینه که در انسان بیر از ادراک مایم بریه این و فعلی که از نم می کشه چیزیست که میکشره میکشه اونو میکشه به طرف انجام دادن دامن. اما مجرد ادراک کمال این نه زار کمال نیست ولی اضاف من فکر میکنم مرادشون از شاعرم یعنی ما از هم بقیه ممنتظرم یه ما اونده همینه. یعنی اضافه بر اینکه انسان ادراک کمال رو من تو مثل تو بحثشن اضافه بر ادراک کمال، ادراک صرف نیست بله نسبت به حق تا اصلا تصور غیر از ادراک نمیشه این نسبت به حق تا ما میگیم مثلا لایک زر نه این که خدا متعال مثلا جز فعل اختیاری شد که دروغ بگیان اگر دروغ نمیگیم مثلا دروغ گفتن برای زشته این ما ادراک ما که حق تا چون هیچ نحوه نقصی در اونجا تصویر نمیشه هرچی از انها نقص مثل ظلم و جهل و, و د تمام اینا ها اصلا خود به خود منتفس ما ادراک میکنه. در مورد عقل عملی در مورد خودمون من بنظر بیانم استاد همینجاست چون توسعه عقل عملی در مورد خدا نیست در مورد ما نید. اون اشتباهه اون عقل عملی در مورد خدا چون اصلا معنای در عقل عملی دقیقاً اگر ما در مورد خدا میگیم ان الله لیس جاهل ان الله لا یجهل الله لا این ادراک واسو حکم بر خدا نیست درست می‌کنی این دو تا این دو تا رو با همدیگه دیگه فرق و ما گفتیم نه نساز به ملاکم همینطور نساز به جنازه‌م من نساز به حیوان است تو عقل اولی بفهم اگر مثلا یک پرنده‌ای فرض از آف... از اروپا بوله میشه تو زرسون میاد تو ایران تو آواگرد زندگی این عقل عملی چی این فکرت اونه درست می‌کنی این یک کمالی است که خدا درو قرار داده این چیزی نیست که او رو بکشید اما بشر چرا ها یعنی اون نکته اینه که اونا میگن شما ادراک کمال میکنید و دنبال کمال این میگن این نه ما فقط دنبال کمال نمیدیم ارزش هم میدیم که اگر نکردیم خودمون ملامت میکنیم چرا این کار رو نکردیم چرا از دست دادیم چرا مثلا سرمایه در انقلاب از روزای کردین؟ چون واسته اینو کلمین آیات رو به شیوهی تفسیر کدام آیه؟ اون هم در مورد حسود داره. دلیل موجعین لا یود الله واظبن لا هو لزوالچه و ایشان در پیمان عذاب شدیدش قرار نمیدن. نیست. مگه بگیم که هد هد در یک مقدار که حضور در حد حضورش در دربار سلطنتی جلاله صلیمان داشته. الله عنه و اولیون الی بین معناوترا البته در خود قران لا از بهنه لا از بهنه نوشته از بهنه می خونید از در و خط غلط دعوا در حضور قران که این ورسون خط صحابه غلط نوشتن بعضیا میگن صحابه غلط نوشتن لا درسته شما نگاه کنید قران از بهنه لا از بهنه اما لا از بهنه می خونید کتابتا لا از بهنه اما لا از نهوق قراءتا و, و, و کتابتا یک جوره این دوستا falouن بنزام که اهل معنان ادعاشون که این مرادش این بوده گفته <تصفيق> لا از بنه مثلا گفته لا با چششون گفته نه نمی لا این که کتابتش یک جور اومده تلفظش جوری دیگه جور آمده این در حقیقت میان که به لفظ به زبان یه چیز میگه به چشم چیز دیگه میگه این محاسبه دیگه نمیكوشن لا از بحن. این که لا از بحن. بلسا به نحو کتابه اگه دقت بکنید علف رو اوردن الان اضافه دقت بوق واضح دقت میخواد نگاه بزنید ازابش که هست خب ببینید یعنی چی مثلا فرض این در دربار سلیمان بود جداش میکن یا فرض بگید اجازه نمیده بالاخره بلا اشکال که حیوانت بله عذاب او با در حدی باشه که قابل تصور حیوان که عذاب نداره در